بر شکست سبا زلف انبرف شانش به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش کجاست هم نفسی تا به شرح ارزده هم که دل چه میکشد از روزگار هجرانش زمانه از برق گل مثال روی تو بست ولی ز شرم تو در قنچه کرد پنهانش تو خفته ای و نشد اشرا کران پدید تبارک الله از این رهت نیست آیانش جمال که ابه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش به دین بیت الهزند که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخت آنش بگیرم سر زلف به دست خاجد هم که سوخت حافظ بی دل زمک رو دست آنش